من بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعسومين والعف دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرناجميع المشردين بحث حسابه اجماع و از خلی به نظر ما با همراه بحث خبر را از زمان علام را عدس الله مرسر بعد سال های هزار که مرغوم محقق و ازیوی بیر الله سر و محقق کرتی تا حضی شنیده سالی, سالی سال ماه سال مجرد اینا تحصیح گذار تو این وحنه این بلکه لاکش کار جلد رو در معارف دیگی محافظ خسوم سیزمخصف و حدیثوینه ایجاد کرد، البته از که دارم چون نخواهیی که از این کاری که پیش آمده بود گرفته می با اونچه که در فتواه بولما بود و با قبول روایدات بود نمیزاد خواهی نخواهیی بردادر اندامه این بحث رو به این صورت مفرح کرد که را قبول بشه این مدنه بیادن از اون محکم خیلی ودیب بود که ما قادم یا این خبر را قبول بکنیم که را میستره باشه حضرت باشه خب این خیلی هم قبول بودی هم قبول بودی از را هم بود ما خبر رو با این عصاق قبول بکنیم مزاقند وقتی که به اصطلاح در اون تمام درست اصول می شد اصول کنده می اصول بود. در اصول حدثانت قبول خبر استاندار استاندارد شد کسی میخواست خبر صحیح منابش کنه مثل صبح سایه در این کاری از به حضورتی تاکیی شد اگر کسی میخواست خبر صحیح قبول نکنه اما حضورتی هم میترسود چیزی شبیه کنه حساب میشه خب علمای ما هم اون زمان بیشتر یه خواستن بیشترقی خواستن اصول بخون تا ما حتی بعد از این دوران بیدیم آراع ابن خاتیب و دیگران ایش رو ن و حتی تا حد زیادی منحجشون هم منهج علمای اهل سنت بود معاده میمیدار فرقایی داره همون همون گوگه نیتر فرسون قیاس رو هم معالم داره با استثاث با هم هم داره با در کتوب هرنامه بحث قیاس بیش از اون مرضی زیاد معالمه تبیلان شبیه اون مرضی زیاد در رو سنت در کتوب اهل احل سنت و گروب هم که من باب چیه، پاچیه، سنبه چیه که معظم اسلامان در دامان خودم قاربه نگرد در خودم تو نونه میبنن، تو نهر میبنن در خیلی تو کتب اهلسانه، تو بخص اصول هم داشتن تو کتب اهلسانه هم تو بحث اصول آمده اما تو معالم نیمانده اینم هم بود که یاشاشاش از اصول معامل شد و تقریبا بعد از معالم یاشاشاش شیعه سر کردن اصول شدیدی رو پیگیزی بکنن نشد خیلی جلعه و برای میخوام بگم که در اون زمان این مسئله هم اغلایی بود که خبر عرم سبر عرم هم به قبول بکنه هم استانزاد و گوزه های علمی عهد سنت بود که اونها هم این مطلب را را لذا علامه هم که مطرح کرد خب حدی قبول شد یعنی جا افتاد و اصطلاح صحیح در قیقت همین شد بعد کسانی بودند که این اصطلاح رو قبول نداشتن میگفتن از سری حضر و مصطلح که حدایب داره حاضر حدیث طبیه آن حضر و مصطلح نیم خودشون رو بگونیم دویشون اصوار نه توی مقدمه شیشونه شده یعنی اصابلن اصوار بودن رو ده میتونم که بارن ایشون این تورید. یا ما برای اولین بار در یک کتابی که مجموع حساب میشه در حدیث ما کتاب کافی ما مثل سید بخاری جامع نداریم ای از بخاریمون بخار بینیمون هم از بخار را ما کتاب جامعی که داریم کتاب کافی که اصول و فروت و بریه دارم برایت متفرقه به اسم روزه داریم کتاب های دیگر ما به این جامعیت نیست. اما اصطلاح جامع پیش از سنت رو هست کردن از ازش تغییر به جامع ما الان در زبان فارسی تغییر به مجموع می کنیم مثلا مجموعه احادیث سریع این طوری. مجموعه احادیث حسن مجموعه احادیث ضعیف اخیرا الگانی کتابی از دوست دوری کتابی دارد نمی که ایش درده سرزر احادیث صحیحه و سرزر طول احادیث زعیفه خب خیلی زحمتی مجموع در مجموع مونده جلده علایه ما در حدیث خودمون در نیازهای خودمون مثل یامه مسلم یا جامعه بخاری نرداریم اشتباه نشه دارد بایشون مقایسته میبنن کافی رو هر چیده بارد خودش خوبش میشه در حرف و از این باز بحله ما جامعه در مجموعه کلیه یا برای روایت سعی نیشه استخراج کرد. از توحید بگیرم، نبواهد نبواهد بگیرم، طب بگیرم، نمیدون پرسو بگیرم تاریخ بگیرم، تفسیر بگیرم، پزایر بگیریم، فتن، ملاحبت بگیرم تمام، کل نبواهد نظرم، آب نیست که بود، ده اشراف کتاب و نبواهد کتاب نمیشتم کل نبواهد در حقیقت کلمه جامعه رو کرده سنن یعنی شعرگی به کار میبرم الان آخر کارسی معادلش مجموعه صحیح یعنی مجموعه حادث صحیحی از رسول الله مجموعه ولی لر که حدیث هر چی پستو شد کل همچه که حدیث کل در کلیه ابوابی که حدیث داریم در کلویه پس نه بخاریم یک میلیون و هفتصد هزار حدیث پیشش بوده این چار هزار رو از ما مثلا انتخاب کرده یا شیستت هزار هفتصد یعنی مراد این عدد سنگین میگن ابن قبضه کتابی در تفسیر نویشه در فیرمه اشان حدیث بوده چند بارش شسور میشده این زیاد هیچ عهد یه اونو نکرد از به همه فرسان چار ست یه بوده که این رسمشون بوده که مجموعه احادیثی که داشتن خیلی سنگین بود اما از انتخاب اولا برای خود احمد النهند این سی هزار میاد از میلون و همسد هزار خود احمد هزار استاد دیده خیلی عجیب رادم آن این اونوش داشتن یا هزار دو هزار شیخ رو ایشون درد کرده کرده از اونا کرده حالا به این رو دقت بکنیم وشن می دقت بکنیم حدیثی رو که قبول داشتن سریعی بود بعد اونا درجه ها دارن کار رو بود شد خیلی سنگ بارستن مثلا این بوده و عرضیش نوشت از این کهزار عرضیش پادر که نمیشت احادیثش نوشتیم این شد که تو دارد احتجایش میدود اگه معارض برنو یه خاصی تفکرات خاصی رو دارن که حالا مهند کارمون در اینجا نیست که اولین بار که کتاب جامعه حدیثی ما تنبیه رو این جامعه بی این چون هم اصول داره هم داره همین جلد متفبقات داره همچه خیلی متفبقاتی کتاب روزه کافی خیلی متفبقاتی حتی بعض ان ايمان منحصر به از از من. من مم. مم. کتاب کافیه معروفه... از بچم برای تعبیه جامع جامع من جامع به معنی بخاری و مسلم درست است اخار هم میدونم هر کامل نیست البته کتاب معروف بنده نه قابل میاره نه بنای روشن نیست نمیشه بگیم بران داشته چون خیلی دیگه از کافی نه باقی و نه اصولاً کمه بعضی بچه یعنی احتمالش نشد در زمان مای متفاوض من بحث بخار نمیشم چون احتیالی به خاص خودش این کتابی که اوال این و این اوال که تازه درن چار میکن. این بعد این جامع، 120 جلده تالا میاند کلنها نصح پیدا جامعش که کامل باشه نه یک کتاب کنه تا داشتی کنم 5 هنوز هم چاپ نشده مشکولو چاپ بشن هنوز کامل چاپ نشه اصلا نزخه ای این یه شده البته این کتاب مظلومه اسفانی مظلومه سوبرانی این کتاب بروشید نوشته این کامل این راست که جامعال معالف الاحکام مظلومه سربدالله شبهر نوشته اون هم کامله خوبه حدود 11-11 قدیم و خط خود نشان من دیدن یه قسمت کچی که چاپ شده خیلی کچی که شنان باید به استضاف دستاری در کتاب یه ملخصی هم خودیشان نوشته حدود دو جده اونم چاپ شده ملخص جامعه، مهارت و لحکان ما هم مهمونه سردازه های شده الان نیاز ما هست مثلا با فکر زمان ما میشونیم یک جامعه حساب و جامعه یک جامعه, جامعه با مرتب شدیه علمی شدیه و دارای ضوابط این مشکلی در کتاب‌های حدیثی ما هست که خیلی بستان زوابط توش ملاعات نمیشه دستانی که این زوابط باید از اول آنه من جهشین سیدیه باید توضیحاتش این شده خودش ارسان خدمتون که این کاری مثلا اولین باری که ما در شیعه داریم که کل کتاب کافی ارزیابی شده در همین قرن 11 تا سر علامه مجلسی است مرافی که ایشون تر قرم این معایر علامه کتاب ارزیابی کنی اولین بار مقابلی نزاری. حالا مثلا ما با باری داریم که مال قرم 8 یا 9 ما لحظ صورت که اینقدر شروع بر بخاری و قیل بخاری و اینقدر سهار متعدد نوشته شده مقارنه انصاف المیراث کثفه انسه ها ای از اونجا که مثلا فتحالباری واریت شدن های بسیار دقیق را اما اما خب محوم مجتهدی در مرئات اگر مرئات عقلی مجلسی رو با فصول واریه حالا ابن حجر وایسرو فهم انسان البته قابل مقایسه انسان است در تحلیل حدیث در شناخت حدیث در اسامی حدیث در متن حدیث در شواهد در مطالعات در مقایسه اطلاقات شما قادم این روز کار میبریم انصافاً کاری ایشان قابل مقایت نیست؟ بله ما مثلاً پس این سال ۷۰ علامه اگر بحث کرده ۱۰۰۰ اینها به باق میشسته و منحکن شده در کافی نه در کافی، براشید، در کتاب مرات رو خور، به حال نه مرات رو خور کافی هستی یه شرق دوره کامل کافی، البته مرموم مرد صالح مزندرانی هم شرحی داره فقط در اصول کافی و حوزه کافی فرو اما شرح جامع کافی مال خود مرحوم ملا سلام شرح در اصول اینو بحثه هم داره مرحوم ملا سنو. و این ضعیفان حسن در شرحش ندید بحثه هم داره میگه تو شرح اصول کافی شما خود شرح اصولش ناقصه اول کتابه تمام بشه حال این مقدار اکتفاوجت فنی و اصول ما کافی اما شعر جامعی که ما داریم راجع به کافی نموان مثال کنموان می رو کنم و همین من حدثم تقییم کتاب مرات رو بود نیست حدثم اون نقصه دیگه نیست این قواهد که سنگی و رو دریم این آمد بود کافی فرکر این آمد بود روان انتباق البته شون خود محبوم مجلسی طبیعتاً اخباری. امز کردم اصفاری ها را این تقسیم موزه گیلی کردم همتا این منشه شد که بعدی ها این شاده دیویس سالیه توی اصطلاحات اصحاب ما آمده که صحیحان اندل بودم ها صحیحان اندل بودمان صحیحان این صحیح اندل بودمان در حقیقت همون محسی بود که دیرو زرک کردن بعد از این که انگام اصلاحات گذاشت اون معالف دینی ما با این اصطلاحات جور در نیمان. نصفت شما کسی منبک شد به قطعه چی؟ جور درده درده چی؟ یعنی طبق این اصطلاح سمیل بود اما قدیمی و قبول نکرده طبق این اصطلاح ضعیب بود اما قدیمی و قبول جرده این دو تا به هم نکرد جور نشد با این اصطلاح ایران نمیتونه از اون راهی رو که ما رو همین حدیث رفتن انجام بده مشکل به قطعه چی شد؟ این چارچوه شدیم قابل این فرما با اون ساختمان قدیم من بود چیزی الان درست شده چارچوهای درست شده آمدن ده تنگرن احاضی به هم می کن. لذا این مشتلاتی که ایجاد شد یک ادیتون ایشون آمدن از ما دنبال اسطلاح بردینید این بررسیل می کنیم اما اگر با قدیم هم خورد اونجا بردگردیم بردین بحث جابر کاسه باشد این رو بیشتر افصولینه با آیمان بس شکل اول و شهده سالی این رو کرده. این نبودیم بحث جادر و کاسر یه بحث حدیثی نیست این بحثی نیست که مثلا من از اون در درات حدیث احلی سنت باشیم بده شهرت در کتب احلی سنت هست جوز مرجحات شهرت جوز مرجحات در کتب احلی سنت هست و نظر انشاءالله تعالی تو بحث شورت از از این که مثل برمی نایمی و استاد دیگران این متخریف شهرت رو در اصطلاحای شیعه به سه قسم کردن یکی شهرت روایی که این در همه راز آمار محضر است این رو گفتند اصطلاحا شهرت روایی روزه مرجحان این شهرت تو کلمات ها تحلی سنتان تو باب ترجیح شهرت دیگه کلمات کلمه ها تحلی سنتان دیگه یک شهرت تو مقبل که همین شوالی که الان در اینویدیست می, می گفتن حدیث صحیحه قدما بهش همه نگردن زعیفه بهش همه این از خسایث شیعه هست این همی شهر جزب مقدر ما یعنی جزب یکی از است که خبر ضعیف به خود جده این سنیا ندارن ما هم قدمای ما ندارن از بعد از علامه این که داشتیم مثلا در معارض بینیموها این بعد از علامه اصطلاح های شهرت فتلایی یعنی یک فتلا مشهور بشه بزیار این که دلیل داشته باشه این اگر درست باشه خودش بجته نه مارجی نه نه موقعی این خودش بجته این هم از زمان علام دادش این بیش برد از هست از زمان علام دادش از زمان علام دادش این هم احنسانت ندار این دوت شهرت رو اصطلاح مشهور رو و این شهرت رو به این معنان هر دو اینها ها قرار شد هر دو اصطلاح بعد از علامه وارد اصطلاحات فقهی ما شد که اگر فتوایی دمیر نداشته باشه اما ادبه زیادی از صحابش رستاده این خبش قجته قیل از اجماع ایک درجه زیدتر از اجماع بود که پیلیتان رو هست یکی اشماع در فرماس علامه آمن لنا آقایی تو مختلف رو میگه لنا انه ها مشهور رو شو میگه دلیل مونه این که این مردم مشهور ورا معارضه در پس دیگه حجته این هم از زمان علامه آمن دقیق فرمون این هم اینشالله نصفی یه خیلی خیلی واضح و رو باقی ارمون این چرا از زمان علامه آمن یه خطابایی رو مهدون شد در سخه تفریقی در مقصود داشت این چه تا روایت نداره قمیون هم نداره همه بحثادیام هم نداره شیخ برای اولین بار تطریق کردو مرتبه شیه از سالهای 420 هجری سال معظمی بعد از گذشته زمان این تحریقات که دلیل نداشت مورد قبول علما قرار گرفت روشو <تصفح> تا زمان علامه 4 <تصفح> سال میشه و 250 سال تا سال 7 الان آمه آقا این خود مشهور بین علمان است خود الان آمه دلیل نظره و روشن شده اصلا ماهیت این حکم اینا احکامی بود حسابایی بود که دلیل نداشتن شیخ حساب القاعده تفریع کرده بود این تفریعات بروده قبول قرار گره از کردن کند بار از دلیل سال مقلد و شیخ بودن ولی از کردن مراده از تقلیل در اینجا تقلیل نیست که ما الان میگیم بد جوری برداشت بزاره مراده از یعنی اون زیر بناهای فکری فکری شیخ رو می این رو هم تقریب می و این عرض کرده الان داره هم وجود داره ستا هم سال نداره. هزار سال هم تقریبی من هزار سال مثلا فصل رو که احران نکن قبل از دیگاه. یه راست که من ناز کردم از کوفه احرام به خب شیر نسبت این وقت با اون تخصیص که خالد روز فسنوی احرام و قبل مگر در اصطورت نزر الان ما رو <تصفح> اما این چی بود عده از خدا این معارضه قطع کنیم یه تقریبی یه اینکه این معارضه تخصیصی و پای کوهیت بعد از الله می گرام کلا می گرام ما قبل اصلا ادعای هم که این مسئله رو غیر از که مثل. مثلا اگر نظر احرام قبل کرد. اصلا این قبل قبل می پرسید چرا این ذهنی این اسمش نم شو اسمش میشه میشه این من تعبیر من یا نارساست من نمیدونم این تقلید نیست تبیع مسلح نیست یعنی این قبول نه به اعتبار متابعت شیخ واقعا اگر یک دای عام و خاص باشه خاص خب و که آن باشه یک خاصو تخصیص می دن جمع اوردی تخصیصو جمع اوردی می یه دایی میگه مطلق احرام نمن یه دایی میگه من نذر کردم جمع ایشو کنید احرام نمن مگر در صورت نذر این مبنا را ائموری قبول دارن نمیدونن که تحلیل شیخ طوسی گردد اشتباه نشه یعنی اونها گفتن این فقیر این جور فهمیده این فهن خوبیه حالا یک فقیر خب قبل از فهمه فهم تعارض داشته خب یهو تعارض این تعارض نداره یه اصطلاح کردن تعارض مستقل رو بدون از این تعارضش مستقل نیست جمع بین آن بخواست چه جمع اورقی چه جمع مذهبی چرا فهمید یا شیخ امام فلان آقا واقعی است ولی نجاشیات نسخه فنده خب اینا به خاطر اینکه شیخ رو قبول دارن میگن بله حدیث هم میگن موثله مشکلاتی هم پیدا می کنم گویه نمیان مناقشه بکنن یعنی میگن کلام شیخ و خصوصا آرگوی مبنایی دارن که توصیقات شیخ و نجاشی مقنیس برای اصالتاله هست خیلی مبنای عجیب غریب میزید اما خب برای مبنای ایش در مقدمه جنده اول دارن یعنی ایش میگه شیخ توصی رو اصالتاله فوق میگه این واقفیه ولیزا ایشون میگه ما قبول میکنیم ایشون مبناشون اینه توصیفات و تطریقات و موارد سر جایی مثل شیخ و رو مثل برگی و کشی و اینا کشی رو رو از درم میکنم بعض هاتون حس دارست میکنن ولیزا اون رو خبر حسی میکنن و چون در موضوعات خارجی خلافنده المشبور قائلن که خبر از بجتی لیزا میگه توسیق واحد هم کافیه یا تضییق واحد احتیاج به دو نفر نداره و شهادت هم نمیدونن حسی هم نمیدونن زندن نمیدونن بخشون محصه محلوبی سی قول رجالی از یکی از بجته محصیت گفتم قول همه خبره زندن زندن قوله از یکی از یکی خبره زندنگل داره الاخر بیشون هیچ کدوم از یه راه هم نمیدونن بیشون حسی میدونن یعنی شعش سوسی اخبار حسی میده که این آقا واقفیه الشاه می از بالا شش توصی در قرن پنجم بوده ساعتمهران در ق دو گم کوشته و شااد شدهده و یه راه میدارنشون برای این که حساس بکنن که این شاده حسیه که برای من میخمواردن بر. یکی از جاات که در کلمات مرگ استاد هست خب بیشتر جنبار من فکر میکنم اقلیه اصولیه ای میشان تفکرات و اصولیه ایشان اگر دور کسی بشه. که خوب دقیق میکنی؟ پس مراد این نیست که تفلیم حالا همین سماه این هم مشهوره ظاهر عبارت نجاشینه که ایشون واقفی نیست آنه ها معروفه بیچاره اونقدر معروف شده که واقفی ظاهر عبارت نجاشینه که ایشون واقفی نیست از بزار یک شیخ من هم صدور هم گفته بازم هم دانه از اینکه ایشون این اگه خاطر شما از من پس این اسمش شاید اون معنا تدرید نباشه. حالا این اسمش چی چیزی؟ یعنی اگه کسی دورا دور ببینه میگه آخویی دارم یاد نقلد شیخ مسعود کنه. مقلد نیستن این اصطلاح. نمی‌دونن اون اسم. اینا که میان 2 سال مقلد بودن، الان شدن اون اصطلاح نیستن. مبانی علمی شیخ قبول کردن، به خاطر والا خودش خودش معنای علمی گذشته رو معنای علمی كلام شیخ آمد میکنه که چون واقعیه ولو ناجو رو واقعه کنه این معنای نه تقلیدی که علام خیال می‌کنه چرا که این حالت بود علامه بعد از دو قرنی که بعد از شیخ آمد از این موارد تفاوت تعبیر میکنه مشهور درست میگه که انصافاً هر از علامه قدس سره هر چه طرز و قلای نشیه از ق پنجم توسط شیخ اول بار گفته تی تمام این ف تیره. علادش هم واضه یا در کلافشی خیا در مسوبیش تو خلاف کرد. توی رواردات هم می توی فکای شع ممانامی توی نهای خود شیخ هم تو توی نهای خود ش سوسی همز. توی قومی ها هم توی ففاارزان می این دیگه واضه شیخ ورده آده هم از ف و خباهای بعدی مثل ابن الویس ابن زهره دیدن حرف خوبیه تصویه خوبیه نه این که نه بشه کردن اونها اونام آوردن حالا بعد از 250 سال علام بخال از این فتباه تعدیر کنی چی بگه بگه مشهور راست یه مشهور را بعد از علام این بحث مصرشت های این شهرت به جست <تصفح> چرا؟ چون این روایت که نداشت فتواییز مشهور بین از ها لذا اندامه این مطلب رو کرد که ما بیاییم مشهور فتوای مشهور رو قبول کنم از بسر کردم ظاهر عبارت از عده موارد شهرت رو حجت میدونه لول المعارض اگر صحبت معارض بشه بسید اجماع رو حجیت میدونه مطلقه خبر صحیح رو حجت میدونه مطلقه خبر حسن رو حجت بینه لول المعارض این خلاصه این چهار تا مطلب اساسی علاقه خب این کار از کرده الان من مدرسه سوقات دیابده شده کنید خود مقروم مجلسی بیونه از یک طرف این اصطلاح وجود داشت آمد کتاب کافی و کنم تو قارب این اصطلاح بید از اون من میشون و اخباری داره اصلا در اون طوفانی که شد، اخواری ها از راه های متعددی رفتن که بگن استلاح اندامه درد نمیخوره ولی که براتون بارز بشه روشن بشه در همین کتاب مرآت العفول کتاب کافی رسولن و فرمان و روزتن نزدیک 16.800.000 16.700.000 حدیث داره یعنی از 17.000 یه چیزی کمتر 23.300 کمتر از 17.000 بی تعداد می کل کتب صحاح سته اهل اینقدر حدیث هستند هم یعنی کتاب کافی به تنهایی از کل صحاح سته بیشتر بر کتاب کافی که می در منابع از این مجموعه‌ای را که من از به یاد آوردم حضور 9000 تا تا ببینیم حالا کتاب کافی ه از کتاب میان در این اطلا و اون در کافی کاف لژیت داد. این تظار داره گفتم تزار پیدا شده و مشکل پیدا شد. در اینکه اون مشکل برای شما تجسسم پیدا بخوره همین مرات رو بود شاید خوبیه. یعنی قطعا بیش از نصف کتاب زنگه بیش از نصف کتاب نه هزار و فرده ای دوشون و این نکته بگم این بحث تا و زور نمیدونم فلسان عمل مشهور و فتحای مشهور این نکتر محصول نوز گفتن به فتح رو کن. این فقط به روایات فتح برمیمگنم چون کافی اصول هم داره تو اصولش هم همینطوره با داره من که نای بجنادی با بامرمایه بایستان آبا قواعد و دلوقتي. من میفهمم من در جوانی اخه ایشون خیلی واقعا با استضا من سال مشهد فرادم بعده نجف هست حالا من در جوانی زارم وقتی یه در سال روز اشعار می‌گذم چون شاید آموزه حکیم بود من آموزه واقعا بالا بردن خود آدم میفهمم می‌داد که من یک زمان برای خود یه درع عقیلا من جایی بود دیدم درع عقیلا به این بگم خب یکی از این مسائل ما کافی نوشته حالا با سر رحمت ما در چون مثلا سر در آسیلوکوی مراجعه و تحلیلی سعی و در تحلیلی آن را سعی می‌کنیم. که یکی از کرده سعی کافی. حالا من داشتم یه نمونه برای مثال بنویم که ما دیگه بحث بیشتر. مثلا در این کافی، در اقتصاد کافی، در قسمت خود جر باب اشاره بر تمام ما به باب و و اشارت و از نسل ایبدالله صادق اولی حسن را کازر امام تا یا 19 سال این باب داره توی باب نسل اشاره اولی حسن حسن در این کافی کل این باب هست کن کل باب هر و درش الان حسن شده چون تمام این سن از کشکال هم سندی زده این, این کار رو نه این که این آقا اولش شوی اولی کسی که این کار شوی کرد و بود میگم تحبیر آن بسیدی بود در حواره در خراب میشه از بخش نمیشه زعیفون زعیفون حالا با که نه این آقا توجه کرد شده مرموم ها ده. مرموم مجلسی چون بی این نقطه واقف بود اگر اون باز مراجب هم در آتله بود میگه زریف اون مشهور از دیگه این معروف در شتب ای این آنزلال به از سنیا اختیار پا این سن زریفه بلکه یکیسی محترم به کذب و برد و خیلیه اون داره همین حدیث رو که دیگه از احادیث فوقل آده زریف کافی حساب میشه چون به خاطر حسن نعباس جوریشی حدیشیه متهم کذاب که اصلا کذاب خودش وضع و خودش یک جای آخوی داریم که این مثلی که محسوق البسلان از این محسوق البسلان مرحوم بجلسی همین حدیثی داشت زریفون علم بشت این حدیثی که آزش اینطور خرابه داشت زریفون علم بشت دقیق کرد یعنی چیزی که برای اخبات من شما بایدی معارفه ما داریم یه آشاش داریم جلو که وضع دنیای علمی ما چی دید ببینید اصل کار چی شد؟ توسط علامه این به اصطلاح نوزه ما در فارتی کنکاش و تحقیق و بررسی شروع شد دیگه مثل قبل از علامه نبوشید یه رواست قسل کافی این کار شروع شد میگم حتی یه فیلسوری مثل ملاسنده هم داره اصلا اینگاه دا یه بستی هم جالی هم داره یه میگه و زعیف هم زعفه هم پلان داره بسته هم پلان از یه چیز هم داره در همیشه او مازندرانی هم بیشون هم داره در شرقی که بر کافی داره اصولا در روزه تن کروه الان که به ماتان اینه دقیقا به فرمانی ما که اون چی که پیدا شد یک تا بود هم تو بحث خبر بود توی فرق تو بحث اجماع هم بود مخصوصا گاهی آمدن خود و از کلام خود علامه تا آرز رو کردن مثلا توی ترسل بخیر بود اجماعه اما تو بخصرف نه هم کنی مخالف از چیه از این طور میشه یک جهده ما اشماع کرده مخالف کرده خودش نه رو این اون بحثی بود که دیرو درست کردم ایجاد یک طوفان در اندیشه های شیدی کرد و راه هایی که شد برای حل این مشکل یکیش راه هایی بود که از, از اصولین ما رفتن با که شهرت جادر است و کاسه ما تو این 9000 حدیث اینطور نیست که همه را دوکنند 9000 زعیت در کافی برای کار دوبلیه. دکات میکنیم. اون میذاریم پسون تمام این بافی که مال اول هستن ساله ساله حدیث باشه. خب بسته امام جزا تحت ایاد ازش رو امام ج زوجو برایت نیست. ما ما مخصوصاً وقتی یکی از حدیث باشه، و بعد از ابوب کمتره. وقتی سالومنش این با عدالتشام خیلی بالاست لکن خب به اصطلاح حدیثی همه زعیت. نزیم. پس این بحثی که پیش آمد اختصاص به فقه نداشت بروز این تاروز رو در نیست مرآت الاغود میشه پیدا کرد اول از مرآت الاغود در مسائل در کتاب شده اول کلمات محقق ثانی میشه پیدا کرد اما من خواستم قوجش نشون بدن که وقتی آمدن با اون قالب هایی که علامه گفته بود کتاب کافی و علبی یا کردن میشه از نسبش رفت و اون قالب های صحیح و مردم مجلسی هم خیلی با دقت می فهمند زهی کن مشهور و خود علمای اخباری هم بعضی هاشون این اصولی ها گفتن که این اندر قدم ها صحیحان حالا اون چرا صحیح قدم رو مطرح کردن؟ چون در بعضی از آثار قدم کلمه صحیح به کار برده شده بود دیدن این با اون صحیح انلام هم که ننخوره از کلم شیخ صدوق در چند مورد چنان در کتاب علل و شواذ یا هدا حدیث الصحیح که به حسب معیار علامه قطعاً صحیح نه احتمالا روایت دارند به اهل سنت اورشان بعدی بر رسول الله و میگه پیش ما قطعا پیش بحث نداره دقت می کنید لذا این تفکر یواشوار شده علامه در کتاب کافی خود ما داره بل آثار صحیح از اهل صادره یا صادره علیه السلام وقتی چون کل نی تعبیر کرده با آثار صحیحه پس ما یک صحیح اندل قدما داره یک صحیحه اندل متأخر این اصطلاح این در حقیقت میشه گفت یکی از راهایی بود برای توجیه این تعارضی که پیدا شده بود یکیش مسئله همین بیا بگیم ها این حدیث که الان ضعیفه اندل این ضعیفه اندل قدما صحیحه یکی سوال بود یه گیرانی دیگه داری بود که اخواری ها و تقریبا ادعا می کردن که مثلا محدثین بزرگوار ما مثل شیخ صدوق رئیس المحدثین ازش تبدیل میکنن این راه رفته و حاصلش این بود این احادیث رو به لحاظ سندی بررسی نکنیم. این احادیثی کردن در کافی تغییر استفسار فقید کتب دیگه آمده کتب مشوره ما تمام از مساضر متبر از ها ده. ما بیا به اون مشااد کار بکنیم، نه رو راوی شما اگر مندایت کیهشر مندایتوطی محوم مجلسی پدر اینشون هم یه طلاح ف ماخوانی اصلاات رو میاریم. وشون میگه رواه کلی روانسه قبلسان فل کافی و هو ضعیف کن به وجودود صحل زیاد ببین اصطلاح رو میانه. به یه بلاق ممکن، ولیکن چند طریقون یعنی چی؟ یعنی شما سهل رو به عنوان راهی حساب نکنید. مثلا یه صنم نزیاد ابن الوشاء، صنم نزیاد ابن محبوب میگه سهل طریق است به کتاب محبوب. طریق در حقیقت ولیکن سان طریقون، تعبیر مجلسه این یعنی که راهی من زیاد داره. و سهل نزیاد طریقا. این طریق یعنی چی این اون راهی بوده که اینا محتقی بودن قدم های با رفتن که حالا اسمش باشن سنگیه قدمایی در سنگیه قدمایی رو مسادر حساب شده نه رو, رو که دیروزم توضیحاتش رو عرض کرده. و بیش بهترین شاهدشون هم همین عبارت صدوق در اول فقیه میگه و جمعی آمافی که نیزار من در زمین کتب مشهوره التي علیه هم و مثل کتاب رحمه هم, در هم ای اسم رویه درست و تون در به نیجون محمدزه اید اسم که اصول و مصنقات این تحریف و تونه و اصول و موسمه را این مثل را مثلا فرصه محروم مولا محمد علیه استرابادی بادی توی خواهد المدنی خیلی گنده می کند خیلی دوشتار میکنه. همین مبنی رو صاحب وسائل صاحب وسایل چرا کتاب وسائل و این کتاب مشروع استقرار شده چون مبنی همینه. مثلا مبنای یعنی از که که کهران هست پس این مبنی بلان هاین هست که خلال استقرار حجته مبنی صاحب وسائل به ادره از اخواهی های هر خبری که در یکی از کتب مشهور باشه که این مبنی شد این مبنی شد و طبعا این موجه و نظام میگن در فرنزا به درد نیم در عوالی به درد در, در, در, در دعایم به این از چون کتب مشروعه نیست خود وسائل در خاتمه وسائل چون زمان سفرگیه بودست و سفرگیه در مقابل عثمانی ها خیلی و عدد دوازده ها بایدان قدر باشا اون کلاه دوازده ترک داشت به اصطلاح هر چی داشتن خیلی از قلبان ما دوازده تری بودست این خاطره وسایل دوازده فایزه داره و عدد دوازده مهلی همس فایزه چهارو میشه میشه. اونجا این مجلب توضیح میده و میگه من این کتاب همون فقط از کتاب مش از کو طول غیر مشروع نکرد اصلا چند بار این دکتری نقش اون قیدتیفه مفید برای منظومه من اثر کار میکرد که میگم این نکات تنیس که شاید یادگی بزنن که یا کسی به نکرد در اون چاپ فرمونوای ربانی این حاشیه نداره این حاشیه ایشان در این چاپ علوذهت آمده صاحب وسائل ما این که شکله و خراسان بود اصلا عموم رو خراسان در زمان صفوی ایشان اداره میشد خیلی موفق بود در تعریف کتب بیس سال تو بیست تا مسائل با اون وسال امکانات اون زمان یه مراجعه سالی هم داره به کل کتاب یه مراجعه سالی هم داره یه مراجعه ایشون به کل کتاب در اون مراجعه سالیش بعد به آمده خیلی اون حواشی نافره چون بعضی از در وسائل فلسفی داره تو اون مراجعه تمام ایشون تاثیر کرده این حواشی منحصرا در این شاخه قابل بحثه در چاپ مردون رنبانی کلن نیامده در ازیاش که احتمالا هاشی و مراجع بوده هست اما به طور کامل مراجعه سومی ایشان و این حواشی در این چاپ آلو آمده این از منافی نوادنه از نواد که این چاپ داره که چاپ آلو بانی فاقده دونه خیلی مردش اینجا خود مردون حساب و ساید عباره که گفتم خطب نشده اینجا خودشه خودشهاشیه داره که در اون چادر آبانیز اینجا هست. و دو دوازده کتاب را نام میگه یا ده تا چهارم هفده مساوی میکنه که اینا کتوبه مشکوک نیستن مثل این دارم اسلام و و, رضا و این کتاب رو اسم اسمی که من از این کتوبه نقل نکردم. این میگم نباید داره چون مردم حاجی چی که باران خورده ات فتادویش گالدست هم خبشون مسترک نیستند راست از یه انصافش مسترک است ولی احادیثی که از این فوت شده رو مدنایی ایشار این احادیث خاص نشده میمان قبول کنند. تو مسترک است دارم و ولی به خورز دارم به نظر من منو همچون من نگاه کنم چند جای احادیث نوییه مقدمه اول هم مقدمه خاتمه چند جیش نگاه کردم احادیث نوی زاهره هم هاشر نیست با نبوی کارو لذایش رو باید خاجی نوری اول توضیح من چهار نرمسته خب هستی قبول ندارم پس خورت نشید که مستدرک خود علم میگه این من قبول ندارم لیست میده این کتاب من قبول ندارم خاجی نوری هر که اصداخل در, در از این کتاب ها رو از که اینشون قبول صحبت و هستی که ما شاید می‌تونم بگم که کمی اهمیت داره، مجبور شدیم کمی توضیح بیشتر از دوبل بنام